بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوندی بی اندازه مهربان نهایت باره بگو به با من وحی شده است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و گفتند بگمان ما قرآن شنیدیم بس شگفت که براه راست هدایت می کند پس به آن ایمان آوردیم و بعد از این هرگز کسی را به پروردگار خود شریک نمی و یقینا بلند است مقام پروردگار ما نه همسری گرفته است و نه پسری پس و اینکه نادانهای ما درباره خدا واقعا سخنان نامناسبی می گفتند و ما چنین گمان کرده بودیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغی نمی بندند و واقعا بودند مردانی از انسانها که به مردانی از جنها پناه می بردند پس به سرپیشی آنها افزودند و ایشان واقعا گمان می کردند همان گونه که شما گمان می کردید خداوند هرگز کسی را بر و ما به آسمان تماس گرفتیم پس آن را پر از پاسبانهای محکم و ستارگان فروزان یافتیم و ما به جاهای برای شنیدن اخبار از آسمان می نشستیم. ولی اکنون کسی که گوش فراده دهد برای خود ستاره فروزانی را در کمین می یابد، که او را نشانه قرار میدهد و ما واقعا نمیدانیم که آیا برای ساکنان زمین شری در نظر است یا پروردگارشان واکن خواسته است ایشان را رهیاب کند و ما دریافتیم که بعضی از ما صالحند و بعضی از ما غیر آن و ما بودیم که برای های بناگونی قرار داشتیم و ما بر این باور داریم که هرگز خدا را در زمین مغلوب ساختن نمیتوانیم و نه هم با فرار میتوانیم توانیم او را مغلوب سازیم و ما چون هدایت قرآن را شیدیم به آن ایمان آوردیم پس هرکی به پروردگارش ایمان آرد نه از نقصانی می ترسد و نه هم از سختی و واقعا بعضی از ما مسلمانند و بعضی از ما ستمگار. پس کسانی که مسلمان شدند هم ایشانند که راه راست را برگزیدند و اما ستمگاران ایشان هیزوم دو هست و این را نیز دریافتیم که اگر ایشان به راه راست استقامت کنند یقینا ایشان را به آب فراوانی سیراب می کنیم تا ایشان را در آن بیازماییم و کسی که از ذکر پروردگارش پرواردگارش روبرتابد او را به عذاب شدید می افغاند. و این نیز وحی شده است که مساجد از آن خداست پس با خداوند کسی دیگر را نیایش مکنید و این که چون بنده خدا برخاست تا خدا را پرستش کند نزدیک بود بالای او بر سر هم بریزند بگو من صرف پروردگارم را می پرستم و هیچ کسی را با او شریک نمی سوزم. بگو من این توان را ندارم که با شما ضرری برسانم و نه هم شما را رهیاب ساخته می توانم بگو هیچ کسی مرا از او خدا خداوند اگر او را نافرمانی کنم نجات دادن نمی تواند و از غیر او پناهگاهی نمی آمد و جز ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیانهای او کاری دیگری از من ساخته نیست و کسی که خدا و پانبر او را نافرمانی کند بیگمان برایش آتش دوزخ است در آن همیشه و به گونه ابدی می مانند تا چون چیزی را که به ایشان و داده می شود ببینند ب زودی خواهند دانست کیست که از لحاظ یاریدهندگان تر است و از نگاه عادت کمتر بگو نمی دانم چیزی یعنی عذابی که به شما وعده می شود وقت آن نزدیک است یا پروردگار من برای آن مهلت قرار می دهد یعنی آن را مدتی به تعویق می اندازد او که دانای غیب است پس بر اسرار پنهانی خود هیچ کس را آگاه نمی سازد مگر کسی از رسول را که پسند نماید پس در این حال از پیش روی و پشت سر او پاسدارانی مقرر میگرداند تا روشن گرداند که آیا واقعا پیامهای های خویش خیش را رسانده و به آنچه پیرامونشان قرار دارد احاطه دارد و همه چیز را از روی شمارش احسایه گرفته است